ریچل شنبه ده آگسته 2013 صبح زود بیدار میشم میتونم صدای ماشین بازیافتو که تو خیابونه بشتم و, و زمزمه نرمه بارونو که میخوره به پنجره که کراها نیمه بازن دیشب فراموش کردیم ببندیم و به خودم لبخم میزنم اونو که باشه سرم خوابیده گرمو محکم احساسش میکنم میلولم و بامو یکم بهش نزدیکتر میکنم و فشار میدم زیاد طول نمی کشه که تکون بخوره بگیرتم و بچرخه سندم زدام میکنه؟ ریچل نکن من یخ میکنم توی خونه نیستم اینجا خونم نیست این همش اشتباهه قلط میزنم اسکات حالا بلند شده نشسته پاشو از لبه تخت آویزون کرده پشتش به منه چشممو محکم فشار میدم و سعی میکنم یادم بیاد اما همه چیز خیلی تیره و تاره وقتی چشمامو باز میکنم میتونم سرراست راست طرف کنم چون این اتاقی که از اون اتاقایی که من هزاران بار یا بیشتر توش شدم اینجا جای تخته این همون اگه حالا بلنشمو بشینم میتونم ناکه درختهای درختای و تو پیادهروی روبرو ببینم اون هر سمت چپ سرویس همومه و سمت راست کمودای دیواری این دقیقا همون اتاقیه که من با تام تو شریک بودم دوباره میگ و من دست میزنم به پشتش اما به سرعت بلند میشه و برمیگرده رو به من کند و توهی نگاه میکنه مثل وقتی که برای اولین بار از نزدیک دیدمش تو اداره پلیس انگار کسی درونش را خراشیده بود و پوستش رو جا گذاشته بود اینجا عین همون اتاقی که من با تام توش سعیم بودم اما این اتاقیه که اون با مگان توش شریک بوده این اتاق این تخت میگم میدونم متاسفم من خیلی متاسفم کار اشتباهی بود میگه کار اشتباهی بود از چشم تو چشم شدن با من پرهیز میکنه میره توی همون درو میبنده به پشت دراز میکشم و چشمامو میبندم و احساس میکنم که دارم فرو میرم تو دل مرگ دل رودام داره وحشتناک به هم میپیچه چی کار کردم یادم اول که رسیدم یه عالمه باهوش صحبت کردم کلمه ها هجوم آورده بودن اون عصبانی بود عصبانی از مادرش که هیچ وقت مگان رو دوست نداشته عصبانی از روزنامه‌ها به خاطر چیزایی که راجع به اون نوشته بودن و تلویحاً گیری کرده بودن که هر چیز سر مگان اومده حقش بوده عصبانی از پلیس به خاطر اینکه همه چی رو سنبل کاری می‌کرد به خاطر قصوری که در حق مگان کردن و در حق خود اسکات هم نشستیم توی آشپزخونه در حال آبجو نوشیدن و من به حرفش گوش دادم و وقتی آبجو تموم شد نشستیم توی ایوون و بعدش عثوریتش فرورکش کرد نوشیدیم و به قطارای نگاه کردیم که می‌رفتن و راجع به چیزای بی صحبت کردیم راجع به تلویزیون، کار و جایی که اسکات رفت مدرسه، درست مثل مردم معمولی من فراموش کردم که قرار بود چه احساسی داشته باشم هر دومان اینجوری بودیم. حالا یادم میاد. یادمه که اون به هم لبخم میزد و به موام دست میکشید. یا مثل برخورده یه موج به صورتم جهش خون روی گناه هم حس میکنم. میاد خودم رضایت دادم. در واقع تو فکرش بودم نه تو فکر رد کردنش. خودم میخواستم. میخواستم با جیسون باشم. میخواستم چیزی رو که جس وقتی اینجا باهاششون بیرون مینشست و احساس میکرد حس کنم میخواستم توی عصر شراب نوشیدن و حس کنم یادم رفت که قرار بود چه حسی داشته باشم عوضش به خودم گفتم جس چیزی نیست جز وهم و خیالی که خودم تجسمش کردم بعد تو از اینم بدتر گفتم اون نه تنها جس نیست بلکه در واقع اون فرد مگانه و مگان الان یه مردس یه جسد در و داغون اونو فاسد. بازم بدتر به خاطر اینکه من همه این چیزا یادم بود نه اینکه موقعیتمو فراموش کرده باشم من مراقب نبودم من مراقب نبودم چون چیزی رو که اون درباره میگن باور کردم یعنی من هم فقط برای چند لحظه کوتاه فکر کردم هر چی سرش اومده حقش بوده اسکات از همون میاد بیرون دوش گرفت و منو از روی پوستش شسته به نظر میاد بهتره اما وقتی میپرسه قهوه میخوام یا نه به چشمام نگاه نمیکنه من نمیخواستم اینجور بشه این اصلا درست نیست من نمیخواستم این کارو بکنم نمیخواستم دوباره کنترلمو از دست بدم سری لباس میپوشم و میرم تو همون و چلب چلب آب سرد به صورتم میپاشم ریملم رو میفته گوشهای چشمم سیاه میشه و لبام تیره یهو شب قبل یادم میاد احساس گیجی میکنم و میشینم روی لبه وان همون کثیف تر از بقیه خونست. است دستشویی چرک شده خمیدندون آینه رو لک انداخته، یه لیوان که فقط یه مسواک دوشه، نه عطری، نه مرطوب کننده، نه هیچ وسیله ی دیگه. موندم که اون وقتی خونر ترک کرده اینا رو برداشته یا اسکات اینا رو دور انداخته. برمیگردم اتا خواب، دنبال مدرک از اون زن بر خونه رو نگاه میکنم، مثلا ردای زنانه ای در، یه برست روی قفصه کشورهای لباس، روژه لبی، گوشواره ای چیزی، اما هیچ چی نیست. میرم سمت کمدای اتاق خواب با و نزدیک بازش کنم. دستم رو میزنم روی دستگیر که یا صدا میزنه. قهوه اینجاست. میدوهم پیشش. لیوانو میده دستم بدون اینکه به صورتم نگاه کنه. بعدش میره و پشت به من میایسته نگاهش میخ شده روی خطاهن یا چیزی دورتر. سمت راستم رو نگاه میکنم و متوجه میشم عکس و شدن همشون. سرم سوزن سوزن میشه. موهای روی ساعدم سیخ شدن. یه جور قهوه می خورم و زور میزنم قورتش بدم. هیچکدوم از اینا درست نیست. شاید مادرش این کارو کرده. همه چیز چیزو تمیز کرده و رو انداخته دور. اون گفت که مادرش هیچ وقت مگانه دوست نداشته، با این وجود کی کاری رو که اون دیش شب کرد می‌کنه؟ کی میتونه با یه غریبه باشه در حالی که کمتر از یه ماه زنش نیست؟ اون بعدش برمیگرده به هم نگاه میکنه و من احساس میکنم انگار ذهنم رو میخونه. چون نگاه عجیبی رو صورتش هست. نگاه آمیز یا مشتت متنفر. و منم با اون نگاه پس زده شدم. لیوانم پایین میذارم میگم من باید برم. بحث نمیکنه. بارون اون اومده هوا روشنتر شده و دارم با چشم نیمه باز به صبح مهداری که آفتاب به دنبال داره نگاه میکنم مردی بهم به نزدیک میشه یه راست میاد تو صورتم لحظه ای که روی پیاده رو هم. دستاممون می گیرم بالا و یهوری میشم تا سر سرایش نباشم یه چیزی میگه اما نمیشنوم چی؟ دستمو بالا نگه داشتم و سرم پایینه برای همین به سختی پنج قدممون برتر که آن اونجاست می بینم. جولی ماشینش دستش دو طرف بدنش آویزونه و رو نگاه میکنه. وقتی چشمان باش تلاقی میکنه سر تکون بر برمیگرده و تون تون میره سمت در جلوی خونش. تقریباً با حالت دویدن. برای یک ثانیه میمونم، به فرم نحیف اندامش توی های مشکی و تیشرت قرمزش نگاه میکنم. حس پیشاگاهی شدیدی در این صحنه دارم. من قبلاً اینو دیده بودم، این صحنه رو که اون داشت میدوید و منم بهش نگاه میکردم، انگار که قبلاً این اتفاق افتاده. بود. درست بعد از این بود که من از خونه رفته بودم. اومده بودم برای دیدن چامیا یا برداشتن چیزی که جا گذاشته بودم. حتی یادم نمیاد چی بود. اون کار مهم نبود برام، فقط خواستم برم خونه ببینمش. فکر کنم یک شنبه بود و من جمعه از خونه رفته بودم. بنابراین حدود 48 ساعتی میشد که خونه نبودم. واسه دادم تو خیابونو بهش نگاه کردم که داشت از تو ماشین چیزایی رو میبرد خونه. در حال اساسکشی بود. دو روز بعد از اینکه من خونه رو کرده بودم. تختم هنوز سرد نشده بود. حرف از عجله کردنه. اونم اینجوری زایه. نگاهش با هم تلاقی کرد و من رفتم طرفش. نمیدونم چی میخواستم بهش بگم. مطمئنم حرف منطقی نبود. من داد زدم و اون مثل حالا دوید. نمیدونستم بعدش بدتر از اینم میشه. اون موقع هنوز این روی خودش نشون نداده بود شکر خدا. اگه به نظرم میتونست بخشتم. واسه هم رو سکو منتظر قطار احساس گیجی میک میشینم روی نیمکت و به خودم میگم این فقط اثر خماری بعد از کده. پنج روز توی ترک بودن و یهو اینجوری شروع کردن نتیجهش میشه همین دیگه. اما میدونم نتیجهش خیلی بیشتر از این چیزاست. به خاطر آن به خاطر اینکه دیدمش و حس کردم وقتی منو دید اینجوری فرار کرد. با ترس.